به لزوم فهض بود در رجوع به اصول لفظی مثل حالات العموم بحث رو به این مناسبت تو بحث اصاصر عموم مورده الله انشاءالله روشن میشه که خطوص اصاصر عموم میشه حقیقا همینطور دقیقی بسورم از شد که مردم ناینی نا قدس الله نفسه و رفاقند صاحبی که باید به تبدیل ایشان یه جواب سی فرمودند برای لزوم فصل در اصول لحظه و تعاصور عموم و لزوم فصل در اصل عملی مصبر حساب در شواص به کلی و خلاصه بحثشون این بود که در مثل اساطر عموم چون اساطر عموم خودش یک اصل حجته فصل از مخصص در حقیقت برگشتش به فصل مضاحن و مانع به خود اصافر عموم به نفسه که از حججه امارات اماراته برسه حسول لنزیه در رطوع اماراته و اما در اصل عملی در حقیقت متممه موضوعه راجع مقتدیه شون ما فرس بکنیم تا اینکه برای ما حالت مثلا لا بیان در براعت صرف پیدا بکنیم یا لا تنبوز یعینه به شک واقعاً حالت شک صدقه پیدا رو کنید ما شک که در حکم داریم واضح نیست خود اون با فهض شد پس در اصول عملی متمم موضوع در رسوه مختزیز و در اصول لفظیه سواهد قبیل مزاهم سواهد و مانه این کلاصه بحثی بود که برمایه نایی میفرد مرمون اصطاق اشکال کردند که این محلوب در, در اصول لفظیه و اصول عملیه از این جهت فرقی ندارن مثل همه در بعضی از موارد در هر دو جزو مضاهمه و مانعه و در بعضی از ما در هر دو جزو مختلفهه ما در بحث قبلی دیروز بحث اول کلام مردم استاد ناقص خوندیم آلا این روز تکمیلشون ارز کنم که قبل از اینکه وارد تکمیل کلام استاد بشیم ما ارز کردیم بحث اول این است که آیا ما چیزی به نام اصول عملیه در احکام داریم یا نه دو سا اصل معروف و از کلمان ذکر کردنی که استصحاب و مراد از اصل عملی در احکام یعنی اصلی که مفادش و مفادمون اصل نازره به خود اثبات خود حقی یا نفی حقی بکنه به عنوانه و این در استصحابه اثبات استصحاب در استصحابه مثلا سابقا یک چیزی حرام بود حالا حرامه واجب بود حالا واجب واجبه این منحسر در استصحاب ما غیر از استصحاب نداریم کرارا نهاز کردیم در اصول حکمیه کلیه تنها اصل محرز اگر ساقه توشه یا اصل تنزیلی عبارت از اسپیت ما اصول محرزه زیاد دارم اما تمام اونها در شباهات موضوعی جاری میشن مثل قاعده یهن مثل قاعده سوگه مثل درستان بینیم که قاعده قرعه حالا اگر اصول تمام این ها مثل قاعده تجاورد مثل تمام پراغ این اصول محرز می کنند لیکن ها در شباط محرزی هم جن. در شباط حکمی کنید یه در اسمت یعنی ما غیرانی اسمت ها دیگه موردی نداریم که به اصطلاح هست اصل درش اصل محرز جاری بشه بله اصلاح که برای من نفیم تو احکام میاد اصلاح تو احیاب و تحدیرم ارز کرده. حکم رو ثابت نمی کنه رو عنوان معلوم میره اطراف علم اجمالی حکم رو به عنوانه ثابت نمی نمیگه صلات به عنوان ها واجبه یا صدره میگه احد و ما واجبه به عنوان احد یا مخیر هستی ما بین احدی این یکی با اون پس بنابراین این روشن شد که دیروز این توضیحی که ارائه کرده به نظر ما هر دو اصل اشکال دارن یعنی هم استصحاب در شواهد حکم نمی‌پذیره چه نمیشه همچیزی بنامه اصالتال برایه نداریم یعنی ما اصلی نداریم که نفی حکیف در مقام ظاهر بکنه توضیحاتش بودهش که یک شکر نمید و اما توضیح بقیه کلام مرحوم استاد شما. در مقام نفی حکیف در مرحوم بودن شما نمایتا دلیلش رو مثلا شرعی یا حکیفی نگیستن به ناغلا دونست بالاخره حتی الواقع بودن یا حتی علم بودنش که فرمه حتی العلم توی علم اصل بودن نه عبدالله نیست، این بنای واقعیه، بنای ظاهری نیست اغلا نمیتونه اما بنای... چرا؟ میتونه اما بنای واقعی اغلا برای این است که تا نرسیده منجز نشه این بنای واقعیش شرا؟ واقع... بنای، بنای که دشتن نه این که واقعی، اصلا این خود این بنای واقعیت داره از از از کردم، از همون شکلت که در اول قوانیش، حالا قوانین خوبه نمیشه وقتی قوانین خوندین در اول قانونی که اصل معانی مختلف داره، به معنی دلیل، به معنی ظاهره. اصل خود کلمه اصل، اگر اصل عملی مراد باشه، خوب دقت کنیم میشه اصل گذشته رو اصل یعنی بنای وغلا داره نه. میشه میشه اصل. بله راست. به این معنا اصل، اصل عملی از اصلا نیست. یه گوزو خاصی میشه اصل گوزو ما، بگیم ظاهره کتابینه. اصل این ظاهره کتابه. نه اون اصل عملی مخواهد بگه نفی حکم ظاهرا از ساطر برای مفادش اینه بله خب مصطوره علایه نفی حکم ظاهرم من مخواهد میگم البته اینه من جدیو زیادم وقت توضیح حرض بکنم ما هم یک نوع نفی حکم ظاهرم بنابراین قائل هستیم اما اصل نیست یک نوع مجازه مثل جرن میزابه مجازه یعنی اگر گفتیم حقوبت نیست اگر گفتیم احکام جزایی نیست پس که ما ظاهرا نیست اینه میشو گفت اما این ارزش حقوقی و قانونی نداره این مثل جرال میدار نمونه نه میگن ظاهرن شاره آمده گفته من برداشتن دقیقه از بخونیم ظاهرن ما ما بگیم چین چیزی نداریم که شاره گفته من برداشتن شاره برنداشتیم بنامه مق شاره امضا کردن بنای اغلا بنای اغلا بر این است که تاب به شما نرسته منجز نشد یه بنای اغلا است این علم ظاهری نیست بنای واقعی اغلا است این بنای واقعی است نه ظاهری بست ظاهری نیست این بنا رو گذاشتن کمایی که در بعض جا هستش بنا میذارن منجز میشه مجرد احتمال میشه بنای اوغلا قابل تغییره جزء احکام عقلی یه نیست که قابل تغییر نباشه یه بنای بنا گذاشتن و نظام ما گفتیم ممکن است در بعضی جا به حرف بگن اینجا احتمال هم منجزه. این هم جزء بنای اوغلا مثلا در یک مورد یک شخصی که احتمال جاسوس باشه استعیدا والله مثلا جاسوس برای کشاک مهم مثلا جاسوس برای فازون افغانستان و پاکستان باشه خیلی با شما الی آمریکا باشه این بناش که احتمال منجزه روش کار میکنه. این هست دیگه می‌خوام بگم این جزء احکام این آون همیشه عقل عقل بر عقلی این عقلی نیست این معنا اصلا عقلاییه عقلی نیست این بنای عقلا گذاشتن. عکسش هم ممکن بود یعنی ممکن بود در یک اصلا در یک جامعه عادی راستون در یک جامعه پیشرفته ممکن ممکن اصلا بگی حتی, حتی احتمال چون شما اگر مجرد این که یک خطای تو مثلا یک جامعه که همش فرض از این بقول میز دیجیتال و کامپیوتر و از پیچیده و به مجرد یک خطای کوچیک اون تازه بعد شهر رو به هم بزنه میگه در اینجا احتمال هم منجزه ما روی احتمال هم حساب بکنم که این جامعه هم ممکن بحثی ندارم. این امکان داره اما اگر اون بنا رو اون اصل نیست اون بنای اغلا اون حده علم نیست این بنای عملیست برای این کار دفت میبرم الان بنای اغلا برای این که قانون تا وصول پیدا نکنه منجز نشه شرط تو وصوله شما محکمت باشه نه تنجس این بحث دیگه‌ست اون بحث اثباته دیگر. در هر حال اون بحث دیگه‌ست که اون تنجز مثلا درست بود یا نه اون بحث شبهه تطبیقی شد مساوی شه اون بعد از تنجس که پیدا کرد باز یک بنای اوغلاس حکم بعد از تنجس موضوع احکام این اینا بنا گذاشته است اگر تنجس پیدا نکنه احکام جزایی براش بار نمی‌شه کدام احکام جزایی احکام جزایی که رو عنوان تمرد عقوبه جزایی که تابع واقعه بار میشه مثلا دیه دیه بار میشه شما نمی‌دونید اصلا قافل خواب بودیم مفتی رو یک نظری و با دیشه چه بدی میگه خواب بودم واقعا فرق داره همین نه اون رفض القرم میخوره به جزایی که در موضوعش عنوان تمرد بده قد مثلا این ده شریفه این بسیار مسائل قابل سند در کل دنیا ما در دانشکده حقوق ما مسائل مطرح میشه پس بنابراین اصل عملی نیست خب به اصل عملی نیست بنای عملی اوغلا است عملی چی؟ چرا؟ ممکنه بگه اشتباه. چرا ممکنه بگه احتمال منجزه. چون مرجع براءة و دقت بکنید. چرا ممکنه بگه احتمال. چرا چون الان بناشون بریم ممکنه بناشون بزنن که احتمال منجزه چرا؟ اص اصلا منتفی نیست قطعاً منتفی نیست ریضان هم در اداره جاسوسی نه همین این خودش دقیقاً اینکه عقلی نیست خودش عقلی نیست ممکن است در یک کشوری به احتمال منجز اصلا بحث برات از قلم قبهه بلا بیان این تعابیر کلامی رو نیاییم قبهه عقاب حق اقوال هم حق طاعه تعبیر کلامی سان قبهه عقاب بلاوه تعبیر اصولی منجزیت احتمال و عدم منجزیتیه ولذا اگر ما مثلا در قوسل ثابت کردیم در این قانون مقدار تشریت مقداری احتمال منقضی شد، از آن بحث کرد که زن دیگر مزد نیست. آیا احتمال منقضی ای شد خوکات به تیروالو زن نمونقضی شد؟ این خودش یک ای بحث اقلایی به نظر ما. نه آنگرچه نعقلی است استقلال لارو این به شرایط اجتماع به خصوص اجتماع فارم. در یک جامعهی دیگر آدم در اینجا احتمال هم منقضی چون از ما هراي چرا ما؟ تو جامعه پیشرفته است با ارتباطات کامپيوتري تو با احتمال احتمال دادي با دست نگردي داري. قانون اون تو اطلاعات تو کامپيوتري ميگه جامعه ممکنه اين ها همينو مراد من. چرا؟ قانون اجازه چون یک بنای اوغله تو قانونشون است. اینکه اينكه محكمه گفت چون در محکمه ها بنابی این شده که احتمال منجز نباشه باید یقین و اطمینان باشه چون بنابی اینه اونا بحثشون اینه که آیا به مرحل تنجز رسید یاد به حالت نظر من مطلب واضحه خیلی طوران این صحبتش ناس. این یه قسمت بحث که به نظر ما اصلا بله اگر روایتی آمد به این عنوان که اگر شما حکمی را نمیدانید به حسب ظاهر از شما برداشتیم چرا چون ما شما این با حد علمتون تا آمل بکنید نمیدانید پس نیست نیست ظاهرند ولی میگن واقعا مستلزم دور میشه این درسته زداد دیگه فرودی این از بفهمم چی از شما بگم بله این اگر بود راسته این اصل عملیه ما اشکال می کنیم که برای از شرعی یعنی حدیث مثلا پس کنید حدیث رفق ثابت نیست سنداً مثلا یعنی دلایل هم ثابت نیست من عرض کردم حدیث رفق ناظر به همین قاعده است یعنی حدیث رفت میگه در شش مورد احکام جزایی رفعه یعنی احکام جزایی حالا با قول مشهور علماء قبل الشیخ من یه توبیه اعرض اصلا این مثال رفعان اممتی مثلا الخطر که در متون اهل سلمت سلاتی آمده در متون ما ربایی صدازی و تسایی آمده شش و نفتایی خود اهل سنت اضافه بر اینکه در مباحث اصولی در مباحث فقهی و بحث کردن و هم بحث کردن اصلا این مثال از وقتی این حدیث مهم بوده ملاحظه تو مت معالمم داره اصلا تو بحث مجمل اون رو تو اصول گراستید خود اهل سنت ملاحظه کردن یکی از مثال هایی که مورد مناقشه بوده که آیا مجمل یامون بیان همین حدیثه بوده در بحث مجمل اون که از مثالاش رو برنمسی که آیا مراق احکام از رفت معاخضه از رفت جمعی آثاره فلسونه العامدی در کتاب احکام میگه عرف میفهمه مراد رفت معاخضه این این مخلف مجمن نید مبین از <تصفح> بس این حدیث رفت اهمیت داشته توی بحث مجمن و مبینه که از بساقه همیه از رفت اگر ما اما رو برای از دست که مانگی بیارم بهت یاد اصلا روحه مالای علمون اگر ندونستی منجز نیست چون منجز نیست اقاب نداره یعنی معاخضه این آنگر معاخضه ما برداشیم به شویه معاخضه بودشیم احکام جزاییم احکام جزایی مترکته بر همه رو در این شش حالت بار نمیشه در مورد خطا در مورد نسیان در مورد اکراه استراح کسیو اکراه کنه اجرا قرنه رد بشه از چهار رد بشه این که چیزی پولش اش هفتیر بیا رد بشه یا مثلا مریضی داشته به خاطر اصرار مریض رد شده پس چی میشه کور چی میشه موخرش جزائی نیست در حال که الان محکم جزائیشون ترجمی نیست پس حدیث طرف رفتی کی اوکی داره؟ مفاد حدیث اینه که در این موارد احکام جزایی نمیشه حالا در استرار رو مثلا فلان چرا چون این احکام جزایی موضوعش تمرد گفت گفت موضوعش مخالفت با نظامه وقتی شما استرار داشتین اتهام داشتین تمرد نداریم به خاطری که مریضو برسونی چرا غیرت شدید پلیس هم شما رو میبره این مریض در حال موثیان مثلا بیمارستان برسونه در همین استرار پس اگر یعنی به عبارت دیگه فعل از شما صادر شده خود دفت فعل از شما صادر شده اما عنوان تمرد نداره این حدیث افراد اینه بگه احکام جزایی رو صدور فعل نیست احکام جزایی رو عنوان تمرده حالا در مورد خطا یک نکته هست که تمرد در مورد احترال یک نکته در مورد مالای علمون نکته نقطه دیگرش نکتهش نه عدم تمرده در هر مورد از این مواردشیشگانه یک جامعه هست جامعش فعل از شما صادر میشه اینکه رفعه انکوم. یعنی چی؟ یعنی این فعل مال شما هست اما به شما نسبت داده نمیشه خب بلا اگرถาม آن چی شده چون صد البته تصبین حدیث مبارک الان تقدیر ثبوت اصلا معنای حدیث اینه احکام جزایی در این شش صورت بار نمیشه کل احکام جزایی حالا به تعبیر شیخ میشه میگه ماخذه با ما वजह ماخذه گفتیم احکام چرا بار نمیشه این تعبیر رفع عن امتی خوب دقت بکنیم رفع ان امتی چرا میگه رفع عن امتی یعنی فعل فعل شما هست اما به شما نسبت داده نمیشه این چه نسبتی؟ میشون افی اومتی میکنم بله چونها توضیح داده جدتون جهره احجاد آه. ممکن بوده جهره مثلا ام... امتنان برای من چون امتنان میشه حالا امتنان اون رفع اومتیش یک شرح دیگه داره که اصلا حدیث رفت که این شده از دیگه یا واقعا یک جا سادر شده متفقل جا سادر شده یه مقدارش روز میراجش چون شب معراجی که از ما بلند آن را صاف و اختهنا. نسیان و خطا در قرآن آمده. حالا این بحث طولانی مراجع حدیث هدیتره که بر قرآن و ذواهر قرآنی و ذواهر تا چه مقدار دلارت میکنه؟ این بحث طولانی اگر مهمارمون هم فی طول میکشیم. و ثابت روایات نتایجش 6000. اول هستند سال تللا ما کل بهترین تندیه که برسترزاز میشه برش هم که همونیست که یک کتاب من لایه زرورتقی تصور کدم و در خصال و همه این آقاون تصور کن در من لایه زرورتقی مرسله و در خصال مرسنده فس این همونه مهمه مفصل اصفار تنیه اون که در من لایه زرورتقی از اونی که در خصال اشتباه گرم حالا واردین وارد این بحثانش هم خیلی طورانی بخواست محفیز رب بگیردیم این شبید خیلی به حدی این نکته اساسی رو خوب در قصر بکن پس حدیث رفت به نظر ما علا تقدیر ثبوت علا تقدیر ثبوت مفاد حدیث رفت نفی حق نیست مراد از حدیث رفت به قلیم رفعان اممتی یعنی فعل فعل شما هست خوب در کنید، بکنید به شما اصناد نمیدید شما چرا خیرمزد شدید لیکن نمیگیم شما شدیم شدید رفع هم. این رفعه بیمارد هم چرا؟ چون استرحال بود اگر فعل اسنادش تام نشد موضوع احکام جزایی تیگه نمیشه چون موضوع احکام جزایی تمرده شما تمرد نگر پس از و پس حدیث را به نظر ما اصلا ربطی به این مهابال میکند، نرتبه حقوق مظاهری و واتیم اون واقعی خودش. برای مرا نیست پنجش در یکیش مثلا نزدیک، ربطی به این مقامات نداره نظر. حالا برای اولین باری که تو صحبت صحبت میکنیم از بات آذی، مردم اصلا بلد اشکالی هم بنا نیستند. خلاصه اشکال که در اصول عملیه هم فس قاضی و واتیم نزدیک و مانع قاضی واتیم نظری مخفیه. در اصول لغویان حنفی صرف هم نمی‌کنه اینی که ایشون فرق گذاشتن درست نیست اما در اصول لغوی یعنی اساس العلوم فرمودن این به به به بنا و سیره عملی فرق میکنه مثلا اگر ما نگاه کنیم به شریعت چون بنای شریعت این است که عموما در یک زمان بیاد مخصصات در زمان دیگه بیاد از کردیم بعض از مخصصات زمان ما امام باقر ما مصادره بعضی از سازمان بغیاس الله داشت تو توبیوهات آمده خب وقتی که بنای به اصطلاح قانونی عرف قانونی بر این باشه که مخصص و معیذ و مجاز و اینها با متأخر باشه منفصل باشه لازم نباشه که در همون مجلس باشه ممکنه 100 صد سال تا 50 سال 200 سال تا 250 سال حاصل زمانی پیدا بکنه طبیعتاً صح در ایجاد برای مختضیه برای مانع نیست صحت در اینجا شما میکنی برای مت که این عموم مثلا ثابت هست عموم نیست کجا تخصیص خورده این برای بیان مختصیه که آیا این تخصیص خورده نخورده اگر تخصیص نخورده باشه ما به با عموم مراجعه اما اگر بحث اون اصول لغضیه در قوانین متعارف بشری باشه مثلا مجلس یا قانون تصدیق میکنه به نحو عموم مثلا میگه تجارت با شرکت‌های خارجی مثلا در تجاری با شرکت‌های اروپایی مانعی نداره بعد از شیش ماه میگه با فلان کشور عروف تفسیر ای این معامله آنسان تجارت نشه خب این ممکنه ما تا تفسیرن یا تا قانون نکنه اگر شک بکنیم به همون اموم تنستات میکنیم اگر بخواییم فهضه از مخصص رو کنیم در حقیقت فهضه از مزاحم و ماله پس ما اگر به این عرف متعارف و اغلا حساب بکنیم پس خیلیم پدر یه سرش شما هر روز از ساعت 8 تا 10 و 12 در مدرسه باشه حالا یه روزی کار فوری اومد تهران میگه آقا جان امروز از ساعت مثلا هفت و تهران این کارو انجام بده خب یک تخصیص خورده اون گفت اون اومدجره هر روز واسه مدرسه هر روز نمیخواد برم مدرسه خب معلومه اگر مخصص ثابت باشه به عموما مراجعه میکنه اگر شک کرد که آیا امروز مثلا مدرسه نره برمیگرده به عموما چرا خب بنای عرف اینه که این عموم عام یک حجت لفظی است و تمسک و به ما لم یثبت مخصص و مخصص ومانع می‌گیرند پس تا ما بر این تمسک به عموم‌ها در ظواهر مثلا فقه اسلامی و شریعت مقدسه به خاطر اون نکته تمام نیست الا بعد از و این برمیگرده به موضوع به مخصص و اما در عرف برمیگرده به مانه این به اصول لفظیه اصول عملی هم همینطوره در اصول عملی فصل استثاب مثال. ایم استاد خودشم قالو به استثاب می کن. مثال بارزش استثاب استثاب اگر در شما حکمی حکمیه کنیه شد فصل مثلا فصل می به این که آیا مثلا خیار علطه تراخیست یا علا فور ما خدا استثاب بقیان خیار برای اتصدا تراشد استثاب بقیان خیار وقتی می که ما به زبه نگاه میکنیم به بhasکت پیدا نکهöst پس قوام استثاب به جهل و این جهل درست نمیشه م. به شکه شک درست نمیشه مجید بعد الفرس ولذا فرس متمم موضوعه محقب یعنی تأثیر در مختصی داره خیلی فرسی فرس هم... ارلامی ایجاد میشه چی بودی؟ چی بودی؟ شکلی شما چرا درست, درست میگه هم. نه همین که شک میکنه شک درست نمیشه مگر با فرس چون اسفرس ها و عنوانش را تنباز یقین به نکنه نمیتونه بکنه چون مربوط به چون مربوط شاره. به اشاره به اشاره نمیتونه این کارو بکنه اما ایشون مثلا همین استصحاب در شواز موضوعیه فحص نمی‌کنه زلزله بود امروز بود آیا فهمی شما از شما سوال می‌کنن زنده ازنا این دیو زنده بود امروز اگه بخواید استصحاب بقای ذمیمی سوال می‌کنید میگن یه کس مرده نموده پس فرما برای این در اصول عملیه هم بعضی جهات هست منزله مانع بعضی جهات منزله مختلف در روچه منزله در روچه پس اصول عملیه با اصول لفظیه مثل ساطر اون در مانع فرقی نداره این خلاصه اشکال مرموم استاد به نایم نایم در کتاب شما در وقت کتابه؟ که فایده اواخر بحثه ایشون در یکو در بحثه و ای من اینا رو شد بخوام این کتاب رو سفارش بدم الان یک مگه یه نکته فنی باشه که کتابار بیاریم ما بگیم ما حضرات استاد هم چه مهره بحث قرار داریم ای این کنیم. مراجعه در با از این جذب می‌کونیم که اول میخوام مراجعه بکنم سران اعظم حضور با شد. که اولا ایشون رو خوبی ادب فرمایید اینی که اینا فرض که منردم گفتم شرح در وطوی مختزز یا در اصول عملیه در موضوعات خارجی خود استثاق در رسوه مانعه این به نظر ما یه منداری خالی از تسامح نیست ما این نقطه اینهایی که این راهی رو که رفتن نیست دقیق بکنید اصولا به طور کلی عملی زابط اصول عملی زابرس و نعیارش اینه اصول عملی جهندشون در ظرف شکه و جهره اصلا اونا اصل جهلشون احتیاج به قبه اقاب لا بیان عنوان لا بیان لا یقین یقینه به شک کلمه شک ندارید. چون استصحاب در ارتکاز اغلایی وجود داره تمثل اصاصل اباهه در ارتکاز خیلی وجود داره طبیعت اصول عملی این نوع سه به خود قطع اصول عملی دائما مقیده به جهل است ولذا به طور طبیعی با علم به خلاف هر رفت میشه اصلا جای اصول دائما محدودن به علم خدا و لذا من کراراً عرض کردم اگر شما لسان ذلیل بحث شوشا یا این ناظر به حکم واقعی است یا ناظر به حکم ظاهری بحثش میاد مثلا کل وش این مطلق حتی ارد به نه ریا این رو مرحوم شیخ انصاری اصلا در در بحث براءت اوردن کل این مطلب حتی یه به نه یا. آیا یا مثلا کل شیء حلال حتی تعلم و حرامون به اینه خب در کفایه‌ای اگه ذهنوارتون باشه جز احتمالات اینه که کل شیء حلال این قاعده واقعی باشه این حقیقت واسه هر سنی اصطلاح رو نگید هیچ‌کس نه حتی استادمون که متعجب اثر یا این آیه موجوده نداره. ما کردیم در این که تمیزی باشه یک قاعده حل داریم یک اصالت حل داریم قاعده حل واقعی یعنی هر چیزی که خدا در طبیعت قرار داده در زمین و زمان و نمران هست و ماه و خن و هر ادراج هر چیزی که فی نفسهی حلاله واقعا حلاله و یک اصالت اصال، این قاعده الهی اسمه گرفته یک اصالت این اصال الهی هر چیزی که در خارج شک می‌کنید شک به این طعمی مذکاه هست یعنی این گوشت مذکاه هست نه این گوشت مذکاه این دیگه واقعی نیست این اسمش اساس الهله گفتید چون ما یک قاعده الهل داریم که ناظر به واقع باشه یک اساس الهل داریم که ناظر به ظاهر باشه, باشه. باشه. نه فقه نمی‌خوایم برمونشون هر اگر شوهه موضوعی به این معنا که موردش به اساس که میشه خارجی در شوهه حکمی ام اگر شک در جهته ترغیب و دوران باشه اونم اساس الهل جالب میشه یه ندنه ممکن است از طرف سیگار کشیدن، فی نفسه حلال یا نه؟ با قطع از نظر جهل. یه نفر میگه بله، میگه سیگار کشیدن حلاله. یه نفر میگه نه، سیگار کشیدن مجهول الحکم حلال یا نه؟ اون میشه اساطره. پس یه قاعده هست، یک اساطره. وقتی اگر این نکته درست باشه، ما قاعده طهارت نداریم، اما اساطه طاهر داریم. اشمعنی قاعده رو استفاده، قاعده استفاده شده نمی‌یشه؟ چرا؟ قاعده هر که واقعی باشه. بایدون. بایدون. نه، اس عقل مورد شخصی است فرق بین عقل و قاعده این بگیرید مثلا ما قاعده ثابت نداریم بودن قاعده به عقل طبعا دیگه با بودن اما در جایی که شک نه جایی که شک نه به لحاظ حکمش بی به لحاظ علم ما یعنی به مقام علم ما اون قاعده هلضه خود استفاده در جایی که خودش خودشه با عنوان نمیخواد اگر با عنوان مشکوک باشه اسالت علم میشه مثلا اساسه طارق بگیم خداوند متعال مثلا فسن خاک کره ماه رو اساساً تاهر خلقه کرده، تاهر که قرار بده این قاعده تاهرد میشه ما کلوشه این نویب حتی تعلم داریم اما قاعده تاهرد نداریم اما اساس تاهرد داریم خوب دقت مکنیم قاعده رو بسنیم برای واقع اسالت رو داریم برای ظاهر گوشنی کنیم خب حالا از کجا بفهمیم مثلا صاحب شفای احتمال داده کتوشه این حلال حتی تعلقی قاعده واقعی باشه یعنی چی یعنی خدابند حکس داره فی نفسه از واقعا هم حلال این بحث رو ما اونجا مطرح کردیم از کجا بفهمیم کلسان دلیل به قاعده واقعیت یا به اصل ظاهریت یکی از راه ها شما غایت نگاه بکنیم هر جالسان دلیل به مغیاب هر جا مقایی به یک امر واقعی شد اون قاعده هست این دوستا پرداشید بشید مثلا مرموم شیخ انساری یا علمای دیگه کند و این مطلق حتی یردفیه نهی اون تو اساطون براه نه ایرادی به اساطون برایه دارد این ربطی به اساطون براه ندارد چرا؟ چون غایتش یردفیه نهی نهی نه نگفت حتی تعلن اگر گفت حتی تعلن میشه اساطون تا شارع واقعا نعهی بکن تا گفت واقعا مراد میشه قاعده. پس این معیار هم الان راحت شد براتون میگه. هر جا در لسان دلیل اون غایت رفت روی علم اونجا اصل هر جا غایت رفت روی واقعی اونجا قاعده نمیشه عرصه بعد نگاه بکنیم یکی که گفت کل این نویز حتی تعلن حتی این شد از این حلال حتی تعلن شد باید. باید. این احتمال در کفایی شما را قاعده هل باشه دیگه قاعد نیست اگر گفت م. کلوشه این حلال حتی یا حرم احوش میشه قاعده وقتی قاعد رفت و عنوان واقعی جابس روشن شد؟ این خیلی راحت برسون این میشه قایده؟ هر وقت قاید رفت رو علم شما چرا؟ چون بنای و اغلا این هست که اصول اصلا در درس جد و شک وارد میشه هست. من در درس تاییوز از سمت مزه ما مفاد اصول رو اگه یادم باریتون باشه ارز کردیم شبیه معبول صانعی میزنیم یه معبول صانعی در منطقه من اصلاح اولی و صانعی منطقه و فلسفه گفتیم یه معبول اولی و صانعیم که اصول درست بکنیم نگفتیم میزنیم معبول اولی مفاد امارات چرا؟ چون امارات واقعه پیش کنیاره شخصی می میگه و من هم پیش زید بودن شما زید بکنه هم میگیم اما اصول متادیشون از قبیل مقبول سانیز چون اصولاً فرضش اینه که میاد جهر و تصویر میکنه. رو تصویر می‌کنه رو جذر بنا می‌ذاره فردش فرضش ایده یعنی شمایی ای که نمی‌دونید زید زنده است چون دیروزی حالا می‌گوشیدین مثلا اونم مسلمی اصل از اصل اصل بلا اصل قاعده فراغت جواب اصل مورده قاعده قرعه اصل مورده استصحاب اصل مورده میشه اینو البته با تندیل بشه بنده این تعدیل بشه تا به این صورت ها سوال کمتر چیند ما با این ترتیب خیلی راحت تنظیم کردیم یعنی ببینید دقت بزنید بحث لا بیان نیست بحث دوباره در این اصل این یک به عنوان اصل کلیس است میشه اوغلا بنای اوغلا هر جا که میخواد اصل ظاهری قرار بدن. فرض اولیش جهله چون اون اصلو میان توی زی... یعنی اون که بی زنجیر بنا اون به اصطلاح چی میام زیر ساخت ما اون پی که بی زنجیر جهله است شناج بغالیشون. اون شناج جهله ولی تو واسه روشی معقوله ثانوی چون اون اولی معلومی اصلا فرضش فرض سرز جهله دقت بکنید و نزار اخر این رفتی به اصول ندارد نداره قیاسی که درست نیست ما دنبال کلمه هم نیستیم از اون دنبال اون بحثا نیستیم هر چی اصله چی میخواد در جواد موضوعیه باشه چه حکمیه باشه طبیعت اصل اینه که باید فرض شک بشه فرض جهل بشه خوب دقت بکن تا جهل نباشه اصلا اصل قرار نمیده اینه نقطه ولزا تمام اصول عملیه مغیاب علم و یعنی به علم به خلافن یعنی محدود به علم به خلافن حدشون اینه تا شما این به خلاف خلاف نواقعه کل وشه نو حتی تعلمه حتی فی فی ان خذران که گفت که اعضاعل ان فقط البته ما در اصالتها رو که اصلا در اون منحطه به همی حدیث اکیز اون نقنف شدینم و ساباتیست و فلان مشکل میشه اصالتها <تصفح> کل کلو شیر نبی منحطه رو. الان که ما یک هر نوایتی خوب از اون بازی لمن سابقا اشار کردم اون مشهور بوده ولی اونم نیست اشاره ما به خودش ممنونیم که فراموز کار کنیم اون که این لکه هلا اونم قاده حلم نیست حالا در هر حال دقت میتونم پس بنابراین هر جا مغیای به علم شد یعنی محدود طبیعتاً میشه اصل عمل میشه اصل ظاهری حکم ظاهری هر جا که روی فرض جهل شما حکم بکنه این قاده کلی ولذا براعت رو هم اگه مخیرم اصل قرار بارید همینطور باشه یعنی فرز جهل باید بشه رو فرز جهل شما که این جهل شما آمد اون و اینجا الحکم قرار میده ولیزا گفتیم اطلاف را اصل این دکتر چون بنای آقلا فرز جهل نیستیم بنای عملی آقلا هست را رو تحبیل بکنیم چون واقعا ما. از نظر حقوق روی و تره شد چون ما بالاخره یه روز یک باید مطلب در سر جانی شد مطلب با این ترهیم ما مطلب کاملا روشن و بلیهی و چند در ظرف جل همیشه همیشه اون اصل ظاهری غیرتی رای نظره درست برمیاد برای از عقلی بود من هم نوست چون هم میگن عقلیه یعنی هیچ وقتی این هم تخصیص بدیر نیست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 بذید تا دیدید بکسانمون زننده فهم نمی‌کنه بده بشه این این واقعا تو عرف عرب مخاطبین این دقتی که شما دارید که داشتم من بفهمیدن حالا اگه عرف عرب ما چکار کنم این بزرکت که صاحب حتی یه رفیه ناظر به واقع <تصفح> <تصفح> دیگه حالا ممکنه است که عرب بسیر نفهم ما خیلی مقلد عرب بسیر که نیستی که عرب بله بس اندرم بس اندرم بعد اینا لسان قانونی از لسان عرف همین ما, خاص همی هم. اینا ما همیشه دلوقتي. شما چون تا بوده امسا ما همیشه میگیم های ما در عرف خاصه عرف قانونی نه عرف آم خب، بحث مست... سعید و اینا آم باشه در عرف قانونی فرق از ما که قایت واقع باشه یا قایت علم باشه از همین استفاده این زبانش، این روایته و خب روایت نداره این باید ثابت هم نیست، ثنا در نظر از منفرز منفرز صدور این جای دیگه هم ثابت نشده. مندیه واقعاً خیلی ثابت نیست مثل قرآن. رو رو روی این کلمات اگر که کج هم ثابت بشه روایت قسراً باز فاض میشه رو کنیم. اینکه قضیه موضوع بشه، قضیه لاغه درقت نشه که آفرین. این نیز وعلموا ان حديثكم هذا دين و این ما خیال بود این ها اینا با کلمه کلمه اینا معامله دین و تکلیف الهی میکرده ما های که میران تسامه داریم خود همون چون من مقیستم که قبل از نه تمام بکنم یه بحث این تسامه پس این نکته و الان من فردا تکلیف میتنم خوب دقت مکنیم این ما دنبال کلمه نیستیم این یک واقعی از این فرق کلی داره با اصول لفظی اصول عملی به جهله. جهلش در مورد جهله پایده سوق مسلم همینطوره یعنی تو نمیدانی مذکارتی یعنی حالا بگو مذکار تمام اصول عملی گفت که من در سجده هستم و نمیدانم مورد. یعنی تمام اینها قوامش در جهله و, و لذا در اینجا فحض در مختصی اصلا که بخواست فحضی باشه در م... یعنی باید اون جهل محقق بشه بله یک نکته هست که جهل در شبهات و حکمی رو با موضوعی فرق گذاش فایده انشاءالا الله و و محمد و خارج میشی از اما